سلام، شما دانشجویان سال جدید هستید؟ بله، ما دانشجوی سال اول ادبیات فارسی هستیم من هم دانشجوی ادبیات هستم از آشنایی با شما خوشوقتم با هم ترکی صحبت می کردید شما اهل ترکیه هستید؟ متشکرم، بله من از ترکیه به ایران آمدم و دوستم علی اهل جمهوری آزربایجان است. من اهل گنجه هستم شهری در جمهوری آزربایجان پس از کشورهای همسایه ایران به اینجا آمده اید بله کشورهای ترکیه و آزربایجان مشترکات زیادی با ایران دارند بله جمعیت ایران و ترکیه تقریبا مشابه است. اکثر مردم ایران ترکیه و آزربایجان مسلمان هستند درست است. اسلام مردم این سه کشور را به هم پیوند داده است. جمعیت آزربایجان چقدر است؟ جمعیت آزربایجان حدود هشت میلیون نفر است. در کشور من اقوام آزری، روس، تالش و ارمنی زندگی می‌کنند. زندگی برای شما در ایران آسان است، چون بعد از زبان فارسی خیلی از مردم با زبان آذری نیز آشنا هستند. بله، برای ما جالب است که در تهران هم ادده زیادی با زبان ترکی آشنایی دارند. البته کمی زبانشان با زبان ما فرق می کند.